الله قريب النقيرين المعصومين و بعد نحن نقرأ في زيارت وارث اشهد أنك قد أقمت الصلاة و آتيت الزكاة وامر بالمعروف ونهى عن المنكر اوقمن الله جورا و اجركم بما شاء عليه السلام وجعلنا واياكم من القالين ما هو الإمام المهدي؟ I oh. یة الله فی مصیبة جدک الحسین علیه الصلاة والسلام امروز با وجودی که بعد از دهه اول محرم هست ولې روز عجیبی است از یک طرف روز چهارشنبی است از یک طرف با نام نامی امام عصر علیه و السلام زیادسمون گره خورده است ما الله تعالی و شریف ما در روایات داریم می‌فرماید اگر کسی قرضدار شد بعد صاحب قرض آمد از آن نفر قرضش را طلب کرد و این نفر نداشت که قرضش را دینش را ادا کند صدایش بلند شد و به حکومت اسلامی رسید همون لحظه دین این نفر ادا میشه از گردن خودش برطرف میشه و گردن حکومت و دولت اسلامی میفتد تا که باید دین این شخص را ادا کند در جای دیگر داریم مفرماید خیلی از یهودی‌هایی که مسلمان شد به خاطر همین مسئله بود در اسلام اگر یک مسلمان قرضدار بشود و نتواند دینش را ادا کند بر حکومت اسلامی هست که باید دینش را ادا کند و قرضش را بپردازد در روایت دیگه داریم می اگر کسی دار شد مرد از خودش اهل و ایال هم باقی ماند فرزندان خردسال هم باقی ماند اینجا بر حکومت اسلامی هست که هم دین این شخص رو بپردازد و هم خانواده این شخص رو سرپرستی کند و خرج و عیال و فرزندان سغیر شخص را باید بپردازد و میدهد. در اسلام از نظر اقتصادی چونین مسئله مطرح هست. ما داریم راجع با جامعه آشرایی مباحث خود رو پی می گیریم و ادامه می دهیم. یکی از مسائلی که در جامعه مطرح است مسئله اقتصاد هست. اقتصاد جامعه آشرایی این گونه هست وقت فرد فرد عضو جامعه در مسئله اقتصاد دچار مشکل می شند آخرش اهددار دولت می شود با عهده دولت و حکومت اسلامی می افتد امروز که ما به نام نامی امام انصر علیه السلام, السلام شروع کردیم یگانه ولی خدا در زمان فعلی امام عصر ما و شماست او یگانه حجت خداست او وارث حسین و آشاراست او همون است که کل مردم دنیا فعلا مدیون او هست چه مسلمانن چه غیر مسلمان زمین اگر اون چه که در رویش هست درون خودش فرو نمی برد خاطر وجود نازنین او هست امروز که ما داریم راجع با اقتصاد اسلامی و اقتصاد جامعه آشرایی داریم حرف خود را باز می کنیم و صحبت می کنیم در اسلام ما چند نوع مالیات داریم و تعداد این مالیات را ما شما خیلی زیاد شنیدیم و معروف هست از این مالیات خمس است. در جامعه آشرایه خمس یکی از گونه مالیات اقتصادی اسلامی مطرح است. دوم نوع مالیات زکات هست سوم نوع مالیات جزیه هست و های دیگه هم از مالیات داریم که در اسلام اینها مطرح است کسی آمد سوال کرد گفت که مالیاتی که اسلام واجب کردن چه خمسش چی زکاتش کفایت کننده زعفای جامعه اسلامی نیست در جواب گفته شد که اگر مردم واجبات اقتصادیشان را به هیچ فقیری در جامعه اسلامی یافت نخواهند شد اگر کفایت کننده نمی بودی خداوند بیشتر از آن را واجب می کرد یکی از علما و بزرگان در یکی از صحبتهایش نقل کرد ایشان این طوری صحبت میکرد. میگفت در اوایل اسلام مسلمانان دوچار مشکل بودند. ولی همین که مسلمانان کم و بیش زیاد شده و اقتصاد اسلامی هم بر اساس دستور اسلام چرخید بعد از چند مدت مسلمانان آمدن نزد پیامبر عرضه کردن یا رسول الله ما در شهر رو در جایی که زندگی میکنیم فقیر پیدا نمیشود که وجهات خود رو بهش بپردازیم چی کار کنیم پیامبر فرمود اگر مسلمان فقیر پیدا نمیشود، شود ببینین مسیحه فقیر اگر مود با اونها بیدهیم مسلمانان رفتن وجهات شرعیشان رو به اونها پرداختن بعد از چند مدت دوباره آمدن عرضه کردن یا رسول الله دیگر در مدینه مسیحی فقیر هم نیست آن عالم اینچونین داشت رنج می بورد می گفت دیروز ما برای مسیحیان زکات پرداختیم ولی امروز در جامعه امروز اسلامی ما ما گدایگر دیگرها و مسیحی ها شدیم این عیب کار هست در زمان پیانبر طی چند سال اقتصاد مسلمانان به گونه‌ای رشد می که یک فقیر در جامعه اسلامی پیدا نمی شود. اگر مسلمانان اقتصادشان رو بر اساس دستورات اسلامی بچرخانند همین گونه خواهد شد در یک روایت خاندم در اونجا امام معصوم علیه السلام وسلام فرموده بود شما به این دستور خاص عمل کنید من امام زمه میزنم که فقیر نشوید. وقت امام معصوم و ذمه خودش میزند یعنی واقعا نمیشود. کسی فقیر نمیشود. تجربه هم ثابت کرده است. در اوایل اسلام وقت مسلمانان به اسلام چسبیده بود از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، از نظر علمی و خیلی نظرها و جهات دیگر اقتصاد اسلام، فرهنگ اسلام، تمدن اسلام، ساخت و ساز و اعمار اسلام، علوم اسلامی خیلی پیشرفت و فعلا ما و شما مسلمانان مصرف‌گری هستیم که علم گذشتگان خش رو به ایرس بردیم. فعلا تولید علم شاید کم صورت می گرد. در حوازات علمیه در مراکز علمی شاید تولید علم بسیار ضعیف هست در دانشگاه های اسلامی شاید تولید علم خیلی ضعیف هست بر این اساس است که ما فقط مصرف کننده هستیم این که به سر حد تولید برسد خیلی کم هست مسلمانان باید چه از نظر علمی؟ چه از نظر غیر علمی؟ به پیش برون که تولید کنن اگر ما نتوانیم تولید کنیم فقط مصرف کنینده هستیم باید علم رو تولید کرد خوراک باب رو تولید کرد فرهنگ رو وسعت داد اعمار رو توسعه بخشید و در همه جهات زندگی باید توسعه بخشید تا زمینه ظهور فراهم بشود این جمله خیلی معروف هست علم فعلا از اون چند تا حرفش فقط چند حرف معدودش بین مردم شناخته شده است. ولی وقت در هنگام ظهور علم همه با همه حروفشان بین مردم هست وقتی بین مردم میباشد لذا در هنگام ظهور هست که ما و شما خواندیم و داریم و شنیدیم که یک زن اگر با تمام جواهیر از شرق آلم به غرب آلم به تنهایی حرکت کند کسی یافت نمی شود که نگاه به زر و زیور اون خانوم بیندازد این از نظر اقتصادی از نظر صحت و سلامتی هم همینطور در زمان ظهور خداون مریضی ها را بر می دارد اصلا مریضی در هنگام ظهور نیست در مسائل دیگه هم همینطوره مسائل علمی و غیر علمی است. زمین اون چی که در درونش دارد بیرون می دهد آسمان هرچی نعمت درش هست می بارد و مردم اصل ظهور در ناز و نعمت به سر می برند و بدون شک این به برکت ولایت هست چرا؟ چون قرآن کریم او آیه معروفی که همگان بلد هستیم اليوم اتمنتو لکم دینکم و اتمنتو غالیکم نعمتی شما که ولایت رو پذرفتید نعمت تمام می شود وقت امام آخر علیه السلام تشریف میارند چون همه ولایت مدار هستن نعمت الهی سرازیر میشود وقتی ما کابول را توانستیم جامعه آشرایی بسازیم کابول یک در ناز و نعمت غرق خواهد شد و فرو خواهد نمید و نعمتهای مزاعف الهی و ارموان خواهد آمد بر این اساس هست که در جامعه آشورایی اقتصاد درش توجه شده است باید بر اساس نظام و سیستم اقتصادی اسلامی عمل بشود تا جامعه در رفاه بپیش پیش رود در آسایش بپیش پیش رود آنهایی که خداوند برایشان نعمت را داده به خاطر وجود نعمت نترقان و آنهایی که خداوند مورد امتحان و آزمایشش قرار دادن بر آنها هم باید سخت تمام نشود ضعيفان جامعه باید دستش گرفته بشود سروتمندان وظیفه دارن که دویون اقتصادیشان رو بپردازند. و الا هم اقتصادداران فردای قیامت برایشان حساب کتابش مشکل هست و هم زعفا همین توریست نتوانسته به خاطر ناتوانی بعض مسائل را انجام دهد دنیا تور هست که براساس اساس فرمایش امیرالمؤمنین علیه الصلاة و سلام فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب اگر عین عبارت مولا نیست مضمون عبارت مولا در نهج البلاغه همین توریست میگه در مال حلال دنیا حساب کتاب وجود دارد که باید فردای قیامت حسابی بشود ولی اگر خدای نخواسته کسی دوچار حرام بیفتد عقاب هست عذاب هست مجازات هست لذا بر سروتمندان جامعه آشرایی هست که متوجه اطرافیانش باشد ما در زیارت وارث هم داریم اشهد و قد اقمت صلات حسین جان شهادت می دهم این که تو نماز رو پا داشتی نماز اصل است و آتیت زکات حسین جان شهادت می دهم که زکات رو عطا کردی دادی زکات خود رو یعنی دین اقتصادی خش رو ادا کردی و امرت بالمعروف و امر به معروف هم انجام دادی و نهیت عن المنکر نهی هم کردی امام حسین علیه و السلام زکاتش رو میپردازد جامعه‌ای که حسینی می شود باید زکاتش رو بپردازد دین پای اقتصادی رو انجام دهد مظالم رو باید رد کند به صاحبانش لوقتات را باید به صاحبانش برگرداند مال پیدا شده را تا جایی که امکانش هست به صاحبش برگرداند انفال باید به صاحبانش سپرده بیشود در معاملات باید بر اساس اسلامی و دستورات اسلامی انجام شود ربا وجود نداشته باشد کمفروشی نباشد و مسائل دیگه ای که در احکام معاملات وجود دارد باید رعایت شود تا یک مال حلال بشود وقتی حلال شد این مال فردای قیامت حساب کتاب کردنیست و اگر خدای نخواست حرام شد علای حساب کردنی اقاب هم هست وقتی مال خدای نخواست حرام بشه، دیگه توفیق سلب می شود وقت توفیق سلب شد جامعه آشرایی نمی شود. وقت جامعه آشورایی و اسلامی نشد زمینه ظهور فراهم نمی شود. وقت زمینه ظهور فراهم نشد ظهور هم محقق نمی شود. وقت ظهور محقق نشد مردم در مشکلات گرفتار می شود. مردم دچار مریزه ها می شود. مردم دچار آسیب ها می شود. مردم دچار مرک های ناگهانی می شود. مردم دچار چهار مشکلات اقتصادی و غیره می شود. اینچونین است. همه چیز به هم پیوند دارند. غذا هم در توفیق ارتباط دارد و هم در سلامتی بدن. غذای ناسالم خوردن مریض شدن بدن هست. غذای خدای نخواست حرام خوردن سلب توفیق شدن است. از یک طرف مریض می شود جسم، از یک طرف روح مریض می شود وقت دو تا مریض همزمان بیاید این نفر رو حاک خواهد کرد لذا هم باید روح غذایش درست باشد و هم بدن غذای سالیم باشد نجیس نباشد ناباب نباشد وقت چنین شد این فرد توفیق می یابد این فرد شایسته می شود این فرد توفیق یاری و نصرت امام اصر علیه السلام را پیدا می کند زن هست مرد هست وقتی درآمد دارد باید متوجه باشد باید برای سرسال تعیین کند ما در همه کابل الحمدلله بانوان زیادی را داریم که با دفاتر آیات مراجعه میکنند جهت ادای خمسشان یا به تعبیر معروف سرسالشان مردان هم همین توریست برای بانوان این مسئله ممکنه کم ضعیفتر باشه چرا؟ چون همه بانوان ممکن ممکنه است مسئله هنر یا همه رشده اقتصادی یا مسئله اقتصادی رو زیاد دنبال نکنن در خانواده شان وقتی کار میکنن اجرت نگیرن، موز نگیرن، لذا ممکن است برای اینها از مسائل واجبی مالی نیاید ولی بانوانی که درآمد دارن باید حساب کتاب مالیشان رو داشته باشند، باید وجهات شرعیشون رو داشته باشند، و همینطور روی آقایون بیشتر از خانوم هاست چون هر اونچه که خودش میخورد و خانوادهش میخورد مسئولیت مال آغاز این در حال است که اگر خانمی میداند شوهرش حساب کتاب مالی ندارد باید از اون مال و اموال شوهرش مصرف نکند یا اگر مصرف میکند باید از مرجع تقلیدش ازن بگیرد و اجازه بگیرد و اله نمیتواند حتی مال شوهرش رو بخورد با وجود که نفقه این خانوم بالای شوهر واجب است با این وجود باز هم نمیتواند چرا؟ چون شوهرش هم نمیتواند تواند با اون مال دست زند و این خانوم هم نمیتواند تواند لذا فقیر حساب می شود اینجا جامعه ای ما نسبت به مسائل مالیشان چقدر دقت کرده وقتی قضیه این توریست او شیر این مادر چگونه به دهن اون فرزند برود و اون فرزند سعادتمند بشود خود خداوند مهربان یک لطف و مرحمت اگر بر جامعه ایمه شما بکند و امام عصر علیه السلام از باب ولایت اگر از ما و شما بگذرد بلی الله متاسفانه جامعه های ما خانواده های ما سخت گرفتار این مسئله هست وقتی ما مسئله مالی خیش را درست نکنیم توفیقات دیگر را نمی توانیم پیدا کنیم پس مسئله مالی یکی از اصول و پایه های اولیه در جامعه آشرایی هست و بر بانوان طلبه هست خانم ها و آز طلبه هست که این مسئله را باید مورد توجه قرار دهند اول خودمان در خانواده خودمان بر همینطور کم کم در جوابه که وقت غذای مردم درست شد از اون با بعد آهسته آهسته جامعه آشرایی درست می شود ولی وقت درون خدای نخواست تاریک بود قلب سیاه بود و از ها و نصیحت ها ممکن است کم اثر کند به مردم لذا جامعه آشرایی به سختی شاید درست می شود و اصلاً نمی شود تا مسئله اقتصادی درست نشد تدبیری که اسلام نسبت به مسئله اقتصاد سنجیده بسیار عجیب غریب هست به گونه عجیب غریب است که آدم به عقل عادی نمی تواند درک کند اون دون تا روایت رو خاندیم که اگر کسی فقیر می شود باید دولت دینش رو ادا کنه. وقتی در واقع آشو را توجه می کنیم غریب بودن عجیب بودن مثلا اینجا پدیدار می شود. همراه امام حسین علیه السلام صدها نفر از مدینه حرکت کرده بود. فرض گیریم همراه محسن علیه صلات و سلام 300 نفر باشد 300 نفر در یک شبانه روز چقدر نان لازم دارد؟ 300 نفر، صبحش 300، زهرش 300، شبش 300 نان غی فقط نان خوش که نمیخورن دیگه چیز هم همراهش هست در یک روز میشه 900 نان چقدر این 300 نفر آب لازم دارد؟ فرض بگیریم بسیار کم اگر فرض بگیریم هر نفر رو دو کیلو آب فرض بگیریم. ۹۸ کیلو آب. ۳ نفر حالا بیشتر سهصدم هست. این سهصد ضر دو 600 کیلو آب. چند مدت شده امام از مدینه حرکت کرد کرده تا بالا. چند ماه طول میکشه چون اما از مدینه حرکت فرمود آمد چند مدتی در مکه ماند آبش رو فرض کنیم در هر جای جای باشد غذای اینهاست هاست کجا شود؟ از آن هم بگذاریم در وسط را اما علیه نامه حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام به اش رسید که آقا جان مردم کوفه بیعت کرده به سمت کوفه حرکت کن همراه امام انبوه از مردم حرکت کرد آمد سمت کوفه در وسط راه بود در منزل سعلبیرنز جلسات قبل خواندیم که شهادت مسلم ابن عقیل علیه السلام و خانی به امام برسد امام اینجا کلمه استرجا را ذکر میکند این الله و این آلیه راجعون و همینطور وقتی لشکری اینجا امه علی سلام خبر شهادت مسلم را میشنود لشکریان کوفه هم میرسد سر لشکر این لشکریان هم حور هست گفتن همراه هزار نفر وقت حور همراه هزار نفر میرسد مانع امام از رفتن می شود و چند مدت در یک جای میمانند و گونه ای که لشکریان خور آبش تمام می شود وقت لشکریان خور آبش تمام می شود آن گونه ای که رسیده است امام حسین علیه السلام سه بار این هزار نفر را در وسط راه آب داد نه تنها اون سه هزار نفر بلکه اسبانشون رو هم آب داد اینجا عقل باید بیاید اینه بسنجد بی که امام چطور توانست با اون تعداده چند نفر که همراهش مانده بود چون قضیه برعکس می شود دیگه چطور توانست فرد بگیرم همراه امام سهصد نفر در اینجا هم باشد اون سهصد نفر رو هم آب و نان می دهد. هزار نفر لشکر حُر را هم آب می‌دهد اسبانشون را هم آب می‌دهد امام این آب را از کجا می‌کنه اگر قرار باشد امام از زمین آب گرفته باشد چشمه باشد بدون شک هزار نفر بیش از 300 نفر اون هزار نفر زودتر از امام گرد اون چشمه حلقه می‌زنند اون گونه که همین جیبون در صحرای کربلا کردند اطراف فرات را گرفتن و نگذاشتند امام اهل خیام امام آب بخورند امام در اونجا آب میدهند و اینها چونین میکنند. این همو اقتصاد هست یا نیست این همو تدبیر اقتصادی و نظام اقتصادی هست در اسلام یا نیست وقت امام در چونین جایهای سخت میتوانند نه تنها مردم بلکه از آنها را آب میدهند مسائل دیگه هم ساده هست. پیامال سلامت و سلام و آتیت زکات هست زکاتش رو می پردازد. شهادت میده هم که زکات رو پرداختیم این چنین هست. همینطور وقتی بیایم تا کربلا برسیم راوی دختر امام حسین علیه السلام هست نقل میکند میگه یک شب مختابی بود در کربلا من ها برایم حجوم آورده بود داخل خیمه نشسته بودم غمها حجوم آورده بود داشتم گریه میکردم شنیدم که صدای گریه میآید و گریه پدرم هست نقل میکند میگه از خیمه بیرون شدم دیدم که پدرم اصحابش رو جمع کردم در اون شب مهدابی و خوابش می که خدعه و نیرن بر ما اهل بیت حرام هست بازی دادن مردم بر ما حرام هست شما مردمی که همراه من حسید آمدید شاید فکر می‌کردید که مردم ویعت کرده است حکومت به دست ما خواهد آمد حالا متوجه میشیم که قضیه برعکس شده است از این تاریک شب استفاده کنید و بروید بی من بیعت را از شما برداشتم و دختر ایمان علیه سلم چنین روایت میکند میگه بابایم را دیدم که سرش رو پایین انداخته بود و خاطر که مردم شرم نشوند و بی کسایی که می رواند نقل میکند؟ می گوید دیدم که ده ده نفر بیست بیست نفر مردم رفتن و امام را تنها گذاشتن جز تعداد اندکی که هفتاد هفتاد چند نفر دقت میکنیم یعنی بیش از هفتاد نفر در اونجا بوده بیش از صد نفر در کربلا حضور داشتن در اون صحرای به آب و علم حالا تا هفتم محرم آب بوده در اون صحرا امام چگونه توانست غذای اون همه مردم رو تهیه کند و براشان بپردازند این همون تدبیر اقتصادی مکتب آشرایی است و همون نظام اقتصادی اسلامی است که در جای جای دستگیر مسلمانان می شود ولی حیفا بر این که ما بر اساس نظام اقتصادی اسلامی متاسفانه رفتار نمی کنیم تجربه شده است کسانی که کمی به سمت خداوند متعال رجوع دارند، در هنگامه هایی که مردم دوچار مشکلات اقتصادی می شون. اینها در رفاه اقتصادی قرار گرفتهاند. در همه شرایط فیلی که مردم داد می از بیکارین و چند مدت قبل که مردم داد می زنن از بیکاری و از مشکلات و بی پولی و هم نبود آذوقه به گونه که دیروز با ظاهرا یک خانم تماس گرفت گفت می خود رو خودکوشی کنم در چون این زمان هستن کسانی که مثل سابق همینطور هم پول هیچ مشکل اقتصادی اینها بالایشان نیست این چیگونه هست که وقت کل جامعه دچار یک آسیبه مثلا اقتصادی میشان یک عده دچار این مشکل نمیشوند و هیچ مشکل رویشان و هیچ سختی رویشان نمیآیند اینها خودش دقت کار دارد تعمل لازم دارد هم در مصرف و هم در درامدها اینا مهم هست جامعه آشرایی باید مدبر باشد تدبیر کننده باشد مسائل اقتصادی یکی از مسائل مهم است که در این زمینه راهکارهای اقتصادی هم باید مطرح بشود و طلاب این کار رو باید انجام دهند مردم را از مشکلات اقتصادی بیرون کنند آداب رزق و روزی رو باید بر مردم تعریف کنند و توضیح بدهند تا مردم از این مشکلات بیرون بشود و خود مردم هم باید دینهای های را رو بپردازن و ایلا نمی اراده خداوند متعال رو نمی شود کسی عوض کند جز این که رحمت خداوند متعال خودش شامل حال فرد بشود و اش دیگرگون بشود و مسئله بده یکی از عقاید مخصوص شعیان روی دهد و رخ دهد و اله هر چه که اراده فرموده خدوانده متعال بر اساس طبیعت خلق همین است جلسه امروز خش رو در همینجا به پایان میبریم مسئله اقتصادی خیلی خیلی مهم هست کارشناسی لازم دارد و طلاب علومی دینی باید در این زمینه خیلی کار کنند مردم هم باید بر اساس رساله های عملیه در مسائل اقتصادی عمل کنند از معاملاتشان گرفتن تا مجهاتشان تا مسائل دیگر امیدواریم چون این توفیق بزرگ را بتوانیم توفیق پیدا کنیم و موفق بشیم و امیدواریم از مکتب پربار حسینی از اون تدبیر بسیار تعجب آمیز حسینی بهرمند بشیم و حرمت صلوات بر محمد عالم محمد نه صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار يا سيدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا جليل In the Lord, in the Lord, in the Holy, in heaven. In in in ودای اکبر تو سلام بر لحظات ودای اصغر تو حسن جان تو لشکریان دشمن رو دادی اما نان حتی به طفل شرکارد هم آب ندادن در یک نقل چونین هست حسین آن زمانه که تنها ماند همه شهدا شهید شدند علی اکبر شهید شد قاسم شهید شد عباس شهید شد اطفال حسین همه تشنن حسین تنها مان نقل میکند سر را به نیزه اشتک یه داد ناصر يلصروني. آیا کسی از حسین رو یاری اینجا بر حسب یک نقل العهده تو علی الراوی می‌گوین یک بار صدای گریه اهل خیمه بلند شد حسین برگشتم ته خیمه صدا زد خر زینب مگر نگفته بودم تا حسین زنده از گریه نکنید زیده میفرماید گریه ما اختیاری نبود همین که صداید آمد آیا یاره کننده است که حسین رو یاره کند ناغادی دمالی از غربی تابی کرد. حسین فرمود علیم را بیاورید از غرم را بیاورید حسین علی از غر را سمت میدان بود صدا زدائی قوم اگر من برای شما گنه کارم این تفل از آبش دارید. آه, آه اون نجیبی با ترس شعبه گلوی نازنین علی از غر نقل بکنن حسین داشت با دشمن صحبت میکرد یک مرتبه دید دست حسین تکان خورد دید گلوی از غرشتی چقدر سخت از آدم تفل نازنینش رو روی دستش خنال و نقل می حسین علی از را هور برای مادرش تحویل نداد حسین برد علی از را پشت خیمنگا دفن کند الهادت و الراوی چون این نقل می یکبار یک بار آمد از بشت خیمکان صدا زبیا ابا عبدالله بگذار یک بار دیگر تفله را دیدن.